صوفی گلی به چین و مرقع به خار بخش وین زبد خوشت را به می خوشگوار بخش تامات و شد در ره آخنگ چنگنه تسبیح و تیلسان به می و می و سار بخش زبد گران که شاهد و ساقی نمیخرند، در حلقه چمن به نسیم بحار بر را هم شراب لعزد ای میر آشغان خون مرا به چاف زنخدان یار بر یارب به وقت گلگنه بنده عف کن وین ماجرا به سر لب جوی بار بر ای آن که ره به مشرب مقصود گرده ای زین به ای به من خاک سار بخش شکرانه را که چشم تو روی بطان ندید ما را به اف و لطف خدا و بخش ساغی چو شاه نوش کند باده سبو کو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش